شناتو با افتخار تقدیم می کند wwww.شن.com کتاب شب شما همدهان علوشگی برنامه کتاب شن با بازخانی این رومان ازشمند بینمایان اثر نویسنده بزرگ فرانسه ویکتور روگو در خدمت شمای. از شما, شما دعوت میکنم به ادامه داستان توجه کنید سنگر سقوط کرد و تقریباً همه این کشته شدند. جنوال جان که مراقب ماریوس بود وقتی دید او زخمی شد و به زمین افتاد او را به دوش کشید و دنبال راه نجاتی گشت. ناگهان چشمش به دریچه آهنی فازلاب افتاد و قبل از آمدن نظامی ها وارد آن شد و ماریوس خونالود را از راه فازلاب از میدان نبرد دور کرد. اما پلیس و نظامی ها که می احتمال دارد انقلابیها از راه فازلاب فرار کنند در شاخه کیلومترها تونل فازلاب دنبال آنها می گشتند. با وجود این ژان والجان از دستی گروه از آنها جان سالم بدر برد اما چند بار نزدیک بود در ظلمات تونل های پیچ در پیچ و هزار تو گم شود یک بار نیز در باتلاقی گیر کرد و تا یک قدمی مرگ رفت اما بالاخره چشمش از دور به نوری سفید افتاد و وقتی به طرف آن رفت به های دریچه خروجی تونل در نزدیکی رویتخانه سند رسید اما نرده خروجی تونل قفل بود ساعت 8 نیم شب بود و او نه راه برگشت داشت و نه راه پیش رفت با ناامیدی ماریوس را زمین گذاشت و خسته و گرسنه خود را تسلیم صبر کرد پلیس ضمن اینکه در زیر زمین دنبال انقلاب گشت در روی زمین همچنان دنبال تبهكاران بود به همین دلیل هم به ژاور مأموریت داده بودند که مراقب ساحل راست سند باشد ژاور موقع گشت در آنجا چشمش به مردی مشکوک با سر و وضعی ژودیده افتاد کالسکی را برای پیشامد احتمالی صدا زد و مرد را که همان تناردیه بود تقییب کرد تناردیه که متوجه شده بود تقریبش می کنند خود را به دریچه تونل فازلاب در ساحل رودخانه رساند و وارد آن شد و دریچه را گفت کرد جاور چند دقیقه بعد به دریچه تونل رسید و چون مطمئن بود که مرد بالاخره بیرون می پشت دریچه منتظر ماند درست چند دقیقه بعد ژان والژان ناامید به آن طرف این دریچه رسید اما وقتی ناامید و گرسنه ماریوس را روی زمین گذاشته بود ناگهان صدایی گفت نصف نصف ژان نگاه کرد و تناردیه را در نور دریچه شناخت اما او در تاریکی قرار داشت و همه جایش لجنی بود و تناردیه او را نشناخت تناردیه با حرفایی که زد معلوم شد فکر کرده ژان ماریوس را به خاطر سرقت پولهایش کشته است و حال میخواهد او را در رود سن بیاندازد. برای همین پیشنهاد کرد نصف پولها به او داده شود تا او هم در خروجی تونل را باز کند جانوال جان والجان سی فرانکی را که در جیبایش داشت به تناردیه داد تناردیه گرگری زد و همه آن را برداشت بعد جیبای آنها را گشت اما چیزی پیدا نکرد با وجود این برای شناسایی قاتل و مقتول در آینده تکه از لباس ماریوس را کرد سپس در را باز کرد تا ژان و ماریوس را همچون تومی جلوی ژابر بیاندازد و در دریچه را پشت سر آنها بست جان والجان در کنار رودخانه آب بر داشت که ژاور بالای سرش آمد جان والجان و ژاور فوری همدیگر را شناختند اما جان والجان از ژاور خواهش کرد که ابتدا کمک کند ماریوس را به خانه اش برسانند سپس او را بازداشت کند جان والجان که قبلا دفترچه یادداشت ماریوس را دیده بود آن را درآورد و نشانی ماریوس را به ژاور داد. آن دو با کالسکه ماریوس را به خانه پدر بزرگش رساندند ژاور به خدمتگار گفت جسد ماریوس را که به سنگر رفته بود آوردند اما ماریوس نمورده بود و خاله و خدمتگار کسی را دنبال پزشک فرستادند. دیر وقت بود اما پدر بزرگ ماریوس نیز بیدار شد و از زوغ و نگرانی حاضر نبود حتی یک لحظه از ماریوس عزیزش که روی تخت بود جدا شود. وقتی جانبالجان و ژاور از خانه بیرون آمدند ژانوال جان برای اینکه با کوزت خداحافظی کند و نشانی ماریوس را به او بدهد دوباره از جابر خواهش کرد اجازه دهد اول سری به خانهاش بزند بعد دیگر کاملا در اختیار اوست در کمال تعجب جابر این بار هم پذیرفت ژانوال والجان وارد خانه شد اما وقتی از پنجره پاگرد طبقه اول پایین را نگاه کرد خشکش زد جابر جلوی در خانهاش نبود. نموند جابر که انقلابی در وجودش رخ داده بود از آنجا به کنار رودخانه سن رفت ساعتها با خود کلنجار میرفت اما چون نمی توانست بین وظیفه قانونی و آزاد گذاشتن جانبالجان که جانش را نجات داده بود یکی را انتخاب کند بالاخره خود را در سن غرق کرد وقتی حال ماریوس بهتر شد می دوباره موضوع ازدواجش را با پدر بزرگش مطرح کند. اما بالاخره دل به دریازد و موضوع را مطرح کرد. در کمال تعجب دید نه تنها پدر بزرگش با ازدواج او مخالفتی ندارد بلکه به او گفت در این مدت بارها کزد و پدرش به او سر زدند و او نیز درباره‌ی آنها تحقیقاتی کرده است. به زودی مقدمات ازدواج ماریوس و کوزت فراهم شد. جانوال والجان نیز به آنها اطلاع داد که کوزت پانصد و فرانک پول دارد و خانواده ماریوس که فکر میکردند او فقیر است تعجب کردند. سپس همه پول را به پدر بزرگ ماریوس داد. چند روز بعد نیز جانوال والجان به آنها اعلام کرد کوزت دختر او نیست بلکه تنها دختر خانواده فشلوان بوده است و پولهای کوزت نیز از شخصی ناشناس به کوزت ارس رسیده است. به علاوه چون خودش قبلا شهردار بود مدارک حویت قانونی نیز برای کوزت به عنوان افرازی فوشلوان درست کرد با این حال چون کوزت والدینی نداشت خودش و آقای ژیونورمان سرپرست و جانشین سرپرست کوزت شدند از طرف دیگر در شب عروسی امدن دستش را به بهانه زخمی شدن باند پیچی کرد تا اسناد ازدواج را به جای او آقای ژیونورمان امضا کند چند شب بعد نیز به بحانه دست درد بعد از بازگشت از شهرداری و کدیسا در مراسم عروسی کوزت و ماریوس نماند و به خانه رفت ماریوس و کوزت به اصرار آقای جیو در خانه پدر ماندند و کتابخانه آقای جیو نورمان دفتر کار وکالت ماریوس شد آنها از جان والجان نیز خواستند با آنها زندگی کند اما والجان قبول نکرد روز بعد از ازدواج، ژان والژان به خانه ماریوس رفت و وقتی با ماریوس تنها شد به او گفت که او یک محکوم فراری است و برای همین اسناد ازدواج آنها را امضا نکرده است. ضمناً همه فکر میکنند او مرده است. با وجود این برای اینکه در آینده برای آنها مشکلی درست نشود این مسائل را به او میگوید و پیش آنها نیز زندگی نمی کند اما از ماریوس که هنوز از تعجب در نیامده بود خواست این مسائل را با کوزت در میان نگذارد. ماریوس، بعد از اعترافات جانوال جان سعی کرد خانوادهش و کوزت را از جان والجان دور نگه دارد. در واقع خود را بین کوزت و جان والجان قرار داد تا کوزت جان والجان را فراموش کند. به علاوه هنوز نمیدانست دانست هزار فرانک کوزت از کجا آمده است. برای همین نمیخواست از این پول استفاده کند. جان والجان که از بی اتنایی ها و سردی های ماریوس همه چیز را فهمیده بود کم کم رفت آمددهش را به خانه کوزت قطع کرد و به خدمتکار کوزت نیست که بارها از طرف کوزت آمد تا بفهمد چرا ژان والجان به او سر نمیزند گفت بگوید که او به مسافرت رفته است از آن پس نیز به خاطر افسردگی روز به روز بیشتر تحلیل میرفت تا اینکه بالاخره به بستر بیماری افتاد. ماریوس سؤالات زیادی در ذهن داشت و تقلیقای زیادی کرده بود او میخواست بداند چه کسی او را نجات داده است اما از تحقیقاتش چیزی نفهمید او چون خود را هنوز به خاطر پدرش مدیون تناردیه میدانست سعی کرد بفهمد او کجاست تا به خانواده تناردیه کمک کند از تحقیقاتش فهمید خانم تناردیه در زندان مرده است و تناردیه و دکترش از علما ناپدید شدند بالاتر از همه به طور اتفاقی از طریق یکی از کارمندان بانک لافیت چیزهایی درباره پول ژانبالجان کشف کرد. بنابراین دیگر وظیفه خود میدانست که پول را به ژان والجان برگرداند شبی که ژان والژان به بستر بیماری افتاد پیرمرد ناشناسی که را خوب عوض کرده بود به دیدن ماریوس آمد تا به قول خودش اطلاعاتی قیمتی دربارهٔ شخصی از نزدیکان ماریوس را به او بفروشد پیرمرد همان تناردیه بود اما ادعا میکرد دیپلمات بازنشستهای است و ماریوس را قبلا در محفلی دیده است اما او روز عروسی ژان والجان را در کالسکهی دیده بود و پس از تحقیقات زیاد درباره او آمده بود چیزهایی را در باره اش افشا کند و پولی بگیرد به ماریوس گفت پدر همسر او دزد و آدمکشی به نام ژان والجان و محکومی فراری است اما با تعجب دید ماریوس این چیزها را میداند گفت رازی درباره سربت خانم ماریوس میداند و به بیست هزار فرانک میفروشد ماریوس که او را شناخته بود گفت این راز را هم میداند حتی اسم خود او را هم میداند و با عصبانیت 500 فرانک به صورت او پرت کرد تناریه که اینطور دید وسائل تغییر بیافش را کنار گذاشت تا راحت‌تر بتواند راز مهمی را که هنوز پیش خود نگه داشته بود بگوید از طرفی ماریوس که می‌خواست او را بیشتر به حرف زدن وادار گفت من میدونم جانوال جان, جان دزد و آدم کشه چون ثروت یک کارخانه داره بزرگ به نام آقای مادلن را دزدیده و بازرس جاول را کشته اما تناردییه به او گفت اشتباه میکند و ژان والجان به این دلایل دوزد و آدم کش نیست سپس با روزنامههایی که آورده بود ثابت کرد مادلین و ژان والجان یکی هستند به علاوه ژاور را والجان نکشته بلکه او غرق شده است گفت والژان به این دلیل دزد و قاتله که خودم تو تونل فاضلاب شاهد بودم که چطور یک شب جوونی ثروتمند و خارجی رو که کشته بود تا پولاشو بدزده از راه فاضلاب میبرد تا تو سند بندازه بعد تیکه از لباس مقتول را هم به ماریوس داد ماریوس رنگش پرید و از کمد دیواری پالتو به و کهنه را درآورد و کف اتاق انداخت و به تناردییه گفت اون جوون من بودم را اینم همون لباسه بعد مشکی اسکناس به صورت تنادیه پرد کرد و گفت شما اومده بودید به جانوال جان تومت بزنید اما او رو بزرگ کردید رو بردارید و گم شید باید با دخترتون به امریکا برید موقع حرکت هم من 20000 هزار فرانک دیگه به شما میدم فقط به قطر دینی که به شما دارم اما اگه نرید من چیزایی از شما میدونم که برای به زندان انداختنتون کافیه de l'ordier, Raph. ماریوس دواندوان سراغ کوزت که فکر می کرد ماریوس دیوانه شده رفت و هر دو به سرعت با کالسکه خود را به خانه جانوال جان و کنار بستر او رساندند کوزت گریه می کرد و می گفت پس چرا مسافرتتون انقدر طولانی شد؟ و ماریوس دائم می گفت منو عفت کنید من منو عاف کنید آنها اصرار داشتند جان جان را با خود ببرند اما جانوال جان به آنها گفت که دیگر زنده نخواهد ماند کوزت گفت. نه شما زنده میمونید من میخوام شما زنده بمونید چنیدید؟ اما کمی بعد حال جانوال جان رو به وخامت گذاشت کزد و ماریوس گریه میکردند به زودی جانوال جان از آنها خاص جلو بیایند و در حالی که دستانش را به زحمت روی سر آنها گذاشته بود با دنیا ودا بله دوستان عزیز به این ترتیب داستان پی به پایان میرسیم. رسد خدا نگهدار تو ارائه دهندگی پادکست فارسی